بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الحمدللہ رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبیهائی و سید المرسلین و آلیه و صحبه أجمعين. اما بعد از نشانه های قیامت رفتن صالحین هست رفتن اهل دین اهل تقوی اینه سنت خدواندیه السنت خدواندیه اینه که زمانی نیاد بعد از رسول الله صلی اللہ علیه وسلم مگر اینکه زمان بعد از اون بدتر از قبلیش باشه زمان بعدی بدتر از قبلی باشه لا زمان الا بعده من الذي قبله این سنت الهی هست در خلقش و هرگاه که این شر در میان مردم به وجود بیاد خود به خود یعنی هر چقدر مردم رو به شر و شر بیارن صالحین کم تر میشن و مردم به جای اینکه به اهل دین اهل تقوا اهل ورع بر بگردن، بر برمیگردن به أن هاي الدين وبراءو تقوىان يسا. دم بالينا إنك كدوم يكأسن ترى. إن الله لا ينتزع هذا هذا العلم انتزاعه وهذا الدين انتزاعه إنما ينتزعه بقبض العلماء. حتى إذا لا يم... لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. فأفتو بغير علم فضلوا وأظلوا. قضاء علم الدين رحم تربيه ناميدورة. ما جرب قبض علماء. علماء صالحين. كرفتان خد بخد مردوم بروم يران بأشخاص جاهل. خودشون گمراهم گمراهم میکنن این از نشانه های قیامت جاهای اهل سلاح و اهل دین هستن ولی با این وجود مردم رو میارن به اونهایی که اهل دین و اهل ورع نیستن احادیث در این باب زیاده در بحث رفتن صالحین رسول الله صلی الله علیه و سلام می تذهبون الخیر فالخیر تا لا حتى لا يبقى منکم الا مثل هذا نیکان پس از دیگری دیگر میرن تا مقدار خیلی کمی باقی بمونید و در روایت دیگر دانیم از عدیث عبدالله من عمر رضی الله عنهما لا تقوم السا حتى يأخذ الله شریطقه خداوند قیامت را برپا نمیکنه کند مگر اینکه که علمان را از روی دنیا بر بداره من اهل الارض فیبت فيها عجاجه تا اینکه که صفه بمونن اون کسانی که گمراهن ارازل و باش لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا ما معروف بدون انچيه ما منكر بدون انچيه نه اینکه فقط نهی نهی از منکر نمیکنن امر معروف نمیکنن بلکه خودشون هم فاعله خودشون هم فاعلا یعنی خودشونم اون منکر رو انجام میدن ربا رو انجام میدن مشروب میخورن کار حرام رو انجام میدن این از نشانه های قیامت که خداوند اهل علم اهل ورا و اهل تقوه برداره کسانی بمونن که اهل برا اهل تقوه نباشن در روایت دیگر داریم از رسول الله صلی الله علیه وسلم یأتی علی الناس زمانون و فيه غربله يبقى منهم حثاله قد مرجت عهودهم و اماناتهم خدا غربال میکنه مردم را تا اینکه کسانی که میمونن آدمای پسیان احقا افتاده های ذهنی دینی نا آمانتی مفهمن، آمانت دریم دونن شیب، نت تعهدی مدونن شیب. هذا وشبك فکانو هاذا، و شبکه آخر حديث قدر حديث دیگر من اقتراب الساعة ان ترفع الاشرار و توضع از از های قیامت اینکه آنهاي که اهل ور ان آنها کوچک شمرده بشن و آنهاي که اهل دین و تقوانی بالا آورده بشن مدح ستایش بشن ما میبینیم گهگاه طلاب اینو به خرج میدن مثلا به نگاه میکنن جوهری مثلا به فرض میگن دکتر فلانی نمیدونم این قد مدرک داره این قد فلان داره خب در صورتی که در جمع شاید مثلا کسانی باشن که ده تا این دکترها مثلا تو جیب داشته باشن هم از لحاظ سن هم از لحاظ تجربه هم از لحاظ علم و دانش مردم چی شده مردم فقط نگاه این مدرک رو میکنن بله فلانی مدرک داره هرچی این فلانی بگه که مدرک داره نگاه نمیکنن که کدوم اهل دین، اهل ورای، اهل تقواس، یک با دلیل صبر میکنه کدوم یک رو حرفش مدرک داره. دیگه مردم توجهشان شده به این ورقه ای که از فلان دانشگاه سادر میشه بنوان این که آقا این طرف پجوریشی انجام داده و این رتبه رو کشیده. بحثو من نمیکنم که شما فکر بکنید علم و دانش و دانشجویی و اینا بده نه بحث اینگه زل تنزل الناس هم مردم رو در منزلت خودشون بذارید اهل علم رو در جایگاه خودشون بذارید هر کسی رو در جایگاه خودش بذارید حرمت بزرگان حفظ بشه نمیدونم جایگاهشون حفظ بشه همونطور که رسول الله صلی الله علیه وسلم می و salam میفرمان البرکه مع با بزرگان شما هست در دا روايته دانور صلاة صل الله عليه وسلم فرمون لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لك ابن لكا ودر روايته لا تذهب الدنيا حتى تصير للكا ابن لكا لكا من دون لئيم كسي اهل الدنيا هست يعني دنيا به جاي مراسي كفهت يعني مردو فقط نجاه شكل خيافي ترف میکنن دنبال مثلا بفكر كه مثلا الفارس مالی جاهی منصبی مقامی داره دنبال اونهایی که اهل دینن اهل ورعن اهل تقوه حسن نیستن اون احادیثی که قبلا در جلسات گذشته بحثش کردیم این منظور رو تایید میکنه اون حدیثی که ما گفتیم اذا رایت الحفات، العرات الصم البكملوک الارض فذاک من اشراطها اونایی که بادی نشین بودن قدرت مالی قدرت فکری نداشتن اونها بشن مرجعیت مردم از لحاظ فکر اندیشه خرد من حادث را میخونم چون نمیخوام وقت رو بگیرم. کلام رسول الله صلی الله علیه و خیلی واضح و روشنه. یک فقط ترجمه کوتاه رو میکنم. رسول الله صلی الله علیه و میفرماین: "انها ستاتی علی الناس سنون خداع. یصدق فيها الكذب و يكذب فيها الصادق. روزهای انگیزی در پیش شما هست. چطور فریب میخورید؟ دروغگو صادقه. صادق دروغگو هست. آن یک کسی راست میگه، اون راست بیش میگن دروغگو فیها الخائن، خائن مش امين وی فیها الامین، اون خائن. فیها فيه، قیل ومر روی بضط یار قال السفیه، يتكلم فی أمر العام. انجیل اسید ششاره اجدادی. تو این که در روایت دیگه حداثه الاسنان کسانی که دندانشون بیرون نمیده از لحاظ علمی منظوره هنوز چیزی یاد نگرفتن فتوا میدن در امور بزرگ امت از سفیه يتكلم في امر العامه امور که امر عموم مردم بهش برمیگرده امر جامعه مردم امور جامعه بهش برمیگرده و در روایت دیگر داریم و من رو به بطیان رسول الله قال الفویس هو و في امر العامه و النبي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا اكر ان شيء كه من بدونم بدونيد خيلي كم مخنديد ولا بكيتم كثيرا وزياد قاعدين ميكرديد يظهر النفاق نفاق ظهر ميشه ناكنيد نفاق نفاق اعتقادي يطرف ك ما ميينين كساني كه فوش به می خدا میدن، بدگویی خدا میکنن، بدگویی رسول خدا میکنن، بدگویی دین میکنن، بدگویی نماز بزاران میکنن. اینو میبینیم از لحاظ اعتقادی کسانی اهل ایمان نیستن. از جهت دیگر ما میبینیم کسانی اهل ایمانند، اهل مسجدن، ولی اون صفتهای که رسول الله صلی الله علیه و آله ما برحذر دونستن، از صفات منافقین، صفات عملی، نفاق عملی میبینیم در ما هست. اذا وعد اخلف، خلاف بعد میکنه. اذا تو منا خیانت میکنه. اگر بهش اعتماد کردی پولی بهش قرض میدی خیانت میکنه پول بر بهت نمیگردونه تو منخان و اذا عاهد غدر اگر تعهد اگر تعهد بده غد میکنه همون مفهوم قبری رو داره و ایده حد حدث کذب اگر حرف زد دروغ میگه دروغ گفتن از صفات نفاقه که متاسفانه در خیلی ماها شاید باشه و از باب مزاح هم شاید باشه که این رسول الله صلی الله علیه و سلم هشدار میده ازش ويل ويل ويل لمن حدث ناس بالكذب ليضحك به الناس او كما قال صلى الله عليه وسلم واي واي باي كسيكه دروغ بگه که مردوم رو بخندونه از این جوک ها و متلک ها و به ترک انسان باید حذر باشه ويل ويل لمن كذب ليضحك به الناس لمن كذب دروغ بگه بخته که مردوم بخندنه و چرا دروغ بگه این از نفاق عملی است و ای مفجر. این نشانه های منافق، نشانه های عملیش در خسومت فجور میکنه دیدید دو تا بچه به هم دوام میکنن، بعد به دروغ میکنن، اول این منو زد، اول به فش داد آدم بزرگان هم همیتور میشن، یعنی وقتی که بزرگم شدن همچنان این خصلت رو با خودشون دارن چه زنش، چه مردش، در خسومت فجور میکنه، میخواد به هر طریق به نفع خودش حکم بده میخواد به خاطر اینکه خودش رو تبرعه بکنه. هر تهمت و برچسبی حسب به طرف مقابل میزنه اون چیزهایی که در سر انجام داده یا مثلا بالفرق اون شخص شاید یک جای اشتباه کرده میاد سازی میکنه. فکر کردید آبرو ریختن چیز خوبیه؟ چقدر خداوند حکیم و منان و حلیم و عباق چقدر لطف داشته نسبت بندگانش؟ که حفظ آوروشون بشه حفظ شخصیتشون بشه شخصیتشون لگد مال نشه شخصیتشون خورد نشه مثلا در بحث زنا شما دارید که باید چهار تا شاهد داشته باشید که عینا واقعی زنا رو ببینن اگر سه تا شخص عادل عالمن باشن بیان ببینن شهادت بدن بعد سه نفرش الله چرا شر اینقدر سخمیری کرده در زنا باید چهار تا شاهد باشه حفظ آبرو چیزی غیر از این نیست سه نفر دیدن ولی سه نفرشون باید کتک بخوره اگر بهترین خلقم باشن چون خداوند نصاب گذاشته حد گذاشته حد چهار نفره باید چهار نفر اون واقعه رو ببینن حفظ آبرو خیلی مهمه ولی الان نه الان لگت مالی آبروها مد شده غیبت کردن مد شده که بیام شخصی رو تخریب بکنیم تو یک جامعه ای بیام فرانگ سازی بکنیم بر علیه شخصی بیام شخصی رو لگد مال بکنیم عبروش رو ببریم حالا شاید با چیزای درست شاید نادرست ما با حتی اگر درست باشه ما حق نداریم دیگه چی برسه به نادرستش که دروغ بهتان غیبت حرامه و بهتانم بدتر ازش قانه یظهر النفاق نفاق ظاهر میشه و ترفع الامانه امانتها امانت داری برداشته میشه و تقبض الرحمه. رحمت برداشته میشه از قلب مردم دیگه در قلب مردم رحمت نیست دیدید تو کلیپ ها خستان کسانی که مثلا به اسم جهاد میرن سر و چاقو برمی‌دارن بر برمی‌دارن اره با بر برمی‌داره اره برقی برمی‌داره چاقو می‌داره چاقو برمی‌داره با چاقو می‌بوره با نمونه های مختلف عذاب شکنجه طرف بچه رو توی جنگ آقا توی عراق دیدیم مثلا طرف میاد آقا این شو خلاف مذهبشه بچه رو برمی‌داره توی کوره می‌ذاره توی مثلا فر می‌ذاره میپزونه اون بچه بردبخ رو دیگه رحم از قلبها برداشته میشه این از نشانهای قیامته دیگه رحم نیست نگاه نمیکنه طرف که اینجا زن کشته میشه پیرمرد کشته میشه بچه کشته میشه دیدیم تو عربستان طرف اومده ماشین و پر از مواد منفجره کرده که عملیات استشهادی انجام بده کجا اومده اومده کنار وزارت داخلی بود خارجه بود نمیدونم بود اون ماشین منفجر کرده بود کنار اون وزارتخونه مهد کودکی بود کل اون بچه صد نفر بچه تو اون مهد کودک کشته شدن خب چی گناهی کرده اون طفل مسعود کشته بشه مگر رسول الله صلی الله علیه و سلام تعهد و پیمان از صحابه نمیگرفت توی جنگ توی جهاد وای بر کسی پیرزنی بکشه پیرمردی بکشه زنی بکشه بچه‌ای بکشه تعهد میگرفت از اصحاب چرا تا اینکه اسلام زشت نشه تا اینکه همچنان رح در قلب ماها باقی بمونه ترحوم داشته باشیم چون دشمن ما هستن چون دشمنی داریم دلیل بر این نیست که بچه مردم را بکشیم جنگ جنگ مردونه هست خیانت نیست غد نیست رسول الله صلی الله علیه وسلم سیزه سال در مکه شکنجه دیدم سیزه سال انصار که مدام با, با رسول الله صلی اللہ بیعت بکنن گفتن یا رسول الله امشب شب حجه شمشیرها دستونه اومدیم بغات پیمان ببندیم تک تکشون جهل و همه سر میزنی. رسول الله صلی الله فرمودن ساکت بشید آروم بگیرید شیطان فریاد میزنه که محمد با اصحابش بلند شدن سر شما رو ببر اونها احرام بسته بودن احرام ممنوع کسی اسلحه بر بده داره صحابتی کجا بودن توی بفر کفار حج رفتن توی منا بودن رسول الله صلی و آرومشون کرد صبح که بلند شدن اصحاب گفتن فا... فا... که ما شنیدیم شیطان فریاد میزنه ای فلانی ابوجهل ای فلانی بلند شو که محمد و اصحابش میخواد غد بکنن ولی مسلمانان اهل غد نبودن مسلمان ها وقت غد نمیکردن از پوش خنجر نمی زنن. نمی ولی یهود میومدن از بالای دیوار سنگ پرتاب بکنه رو سر رسول خدا ولی هیچ از اصحاب نمی ابو ابوجهل رو ترور بکنه از پوش خنجر بزنه جنگ جنگ مردونه هست جنگ مردونه اهداد عده, عده عده معنوی ایمانی تقوا قیام تهجد ذکر عده بدنی. حده مالی اعداد میخواد وعدو لهم تمامی این اعداد باید در نظر گرفته بشه نه اینکه که به قول رو شخص بیاد که بگه که من خودم و نمیدونم میرم فلانجا مثلا این عملیات رو انجام میدم و خودم و منفجر میکنم این چیزی در اسلام نیست و این باید ما متوجهش بشین و تقبض الرحمه و یتهم الامین و شخصی که امانت داره خوان جلوه داده میشه حالا با برچه زدن با نمیدونم با تهمت زدم بهش و یؤتمن غیر الامین کسی که امین نیست امانتدار میشه انا خبکم شرف الجون قال ما شرف الجونی رسول الله قال فتن کقطع اللیل المظلم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم میفهمه میگه شطران سیاه رنگ اون شطران سیاه میگه دیگه زانو به زمین زدن پیش شما یعنی چی؟ گفتنگی رسول الله یعنی چی؟ شطران سیاه زانو به زمین زدن یعنی چی؟ فرمودن فتنهای شب تاریک چطور چطور, ش... چطور سیاه رنگ در شب تاریک ماه نیست چطور دیده نمیشه فتنه است در شب تاریک دیده نمیشه نمیتونید تشخیص بدید توش میمونه طرف بحث داعش میشه مثلا شخص الان میمونه با خودش شک میزنه شاید بر حق شاید بر حق نباشن فتنه است یک هایی که گریبانگیر اشخاص میشه طرف 16 17 سال بیشتر سن نداره سریعا بدون مشورت با اهل علم تصمیم میگیره بلند میشه در عراق در سر ترکیه در ورده سر سوریه در این است الله صلی الله وقتی که اون شخص اومد به رسول الله علیه اون یا رسول الله عدل و ناکن یا رسول الله قال و من اعدل بعد رسول الله صلی الله علیه بعد از اینکه دلفویسری تمیرافتان گا، يخرج من قلبی هذا و ناس یکراآون القرآن، از نسل این، یعنی هم فکران این کسانی میان، قرآن میخونن، لكن لا یجاوز تراقیم، داره ودح ناجرهم، اس حنجرشون پاین میریانی کی، یعنی فق، ف، در، نسبت به آیات قرآن، نسبت به احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم نداره، باتشون زهصله اس، خُصَن اونهاي که کوچکن، حدا فعل است نه رضازادم میگه، تازه دنداناشون بیرون اومده. عزاض فکری تازه فکرشون میخواد روش بکنه ولی خب تصمیم گیری کلان میکنن برای خودشون یقرؤون <تصفح> القرآن لا یجاوز حناجرهم قرآن میخونن ولی فقه و فهم قرآن رو ندارن اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم گش میکنن از یک آفتی از یک بلایی از یک مصیبتی از یک فتنه ای که اینجوری باشه تشریحش میکنن یک شطر سیا درد و راه حل و علاج و درمانش را میگن وقتی که رسول الله صلی الله علیه و درباره خوارج که دندونش رو تازه بیرون اومده رش نکرده و قرآن از حنجرهشون پایین میره تا جایی که میگه ی حتدکن صلاته به صات. نماز خودتون رو در مقابل نماز اون تحقیر میکنید. قرآنتون در مقابل قرآنشون قیامتون در مقابل قیامشون اهل قیام متاجن. اخلاص هم واقعا فکر نکنید ما ماطعن در اخلاص کسی میزنیم لیکن این اخلاص جایی کار دست انسان میده وقتی که درش، فکر و اندیشه و تفقه در دین نباشه وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرماین از حنجرشون این تلاوت قرآن پایین نمیره یعنی دران با این زبانشون تلاوت میکنن میخونن قیام ولی که درک اون آیات اون چنانچ خدا و رسولش خاصن، اون درک و شعور رو ندارن دنبال فقه و تعلیم و علوم دینی نبودن برای اینکه شما بفهمید و بتونید تشخیص بدید این فتنه هست باید عالم بشی. باید اهل علم بشید، باید درس دینی بخونید، باید تفسیر آیات قرآن بخونید، احادیث رسول الله صلی الله علیه سلم را بخونید تا این که بدونی تشخیص بدید بدون این فتنه هست این فتنه نیست هر کسی خودش را در مقام اجتهاد قرار نده امام شافعی رحمه الله میگوید تا این که شخص حافظ کل قرآن نباشه و شناختی به ناسخ و منسوخ قرآن نداشته باشه و به اجماع و به اقوال صحابه و به لغت عرب و بلاغت عرب اگر کسی درو باشه حق نداره بیاد اجتهاد در دین بکنه اجتهاد بکنه اینطوره نیست که هر کسی بیاد از قرآن یک آیه رو بگیره بهش استدلال بکنه و بگه اینا این منظورش اینه و اگر اومدن فقه امام شافعی یا ابو حنیفه یا مالک یا احمد بن رحمهم الله اجمعین اگر جمع کردن به خاطر اینه که هر کس میاد هر چی خاص بگه اونها اهل علم بودن اهل درایات به لغت عرب ناسق منسوب اجماع اقوال صحابه اونها درایت داشتن که اومدن استنباط کردن ولی ما کی هستیم چی از لغت عرب حالیمونه کلی باید اینجا بیاییم نه سال بخونیم صرف نح الفیه تا اینکه شاید طلبمون حقیقتش رو میگیم ساعت 4 4 فارغ تحصیل بشه شاید یک جمعه رو خوب نتونه ترجمه بکنه به خاطر چیه به خاطر اینکه دست و پنجه نرم نکرده با لغت عربی عربیت فقط این نیست که من فعل و فاعل رو یاد بگیرم بلکه مصادیق کلمات رو باید یاد بگیرم کجا به کار می‌بردن کجا به کار نمی‌بردن چطور ازش استنباط میشه برداشت میشه زحمت میخواد نه اینکه من شما را مایوس بکنم کسانی بودن نخبگانی بودن اهل علمی بودن از اینجا فارغ تحصیل چون جد و داشتند اگر جد و داشته باشیم و تمکن علمی داشته باشیم بله میتونیم ولی در غیر این صورت فکر نکنید که در هر صورت شما اشتهاد بکنید اگر به اشتباه هم بره شما اجر و ثواب دارید خیر عجر و ثواب اون کسی که داره که اهلیت اجتهاد رو داره ادوات اجتهاد رو داره نه اینکه هر کسی بیاد اجتهاد در دین بکنه بیاد فتوایی بده و از قول خودش چیزی بگه دین اینطوری نیست دین بیدرو پیکری نیست درید داره پیکری داره حسولی داره، اساسیاتی داره که باید طالب علم یاد بگیره تا اینکه بتونه درست برداشت بکنه و درست مفهوم خداوندی را درک بکنه بحث بحث فقه در دینه و من یورد الله بهی خیرن یفقه هفه دین بدونید چنان چرا صلاح سالسان میفرماین کسی خدا خیریتش رو بقاهه خدا فقه در دین بهش میده فهم در دین، درک در دین بهش میده شما خدا خیریتتون خواسته اینجا باشی تا اینکه فقه در دین رو به دست بیارید فقیه دانا و با عالم باشید آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلی الله علی محمد و آل محمد